تائر دولت اگر باز گذاری بکند، یار باز آوید و با وست قراری بکند. دیده را دست گهد و رو گوهر، گرچه نماند، بخورد خونی و تدبیر نساری بکند. دوش گفتم بکند، لعله لبش چاره من، حاطف غیب نداداد که آری بکند. کس نیاورد بر او دم زند از قصه ما مگرش باد سبا گوش گزاری بکند دادم باز نظر را به تزروی پرواز باز خونت مگرش نقش و شکاری بکند شهر خالی است و شب ببد که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکند خو کریمی که ذ بزم طربش غم زده ای جرئی درکشد و دفع خمار بکند یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رغیب ببدایا که فلک زیند و سکاری بکند حافظا گر نروی از در او هم روزی گذری بر سرت از گوشه کناری بکند